این داستان ویالون نواز شگفتانگیز. روزی روزگاری زیر گنبت آبی آسمون یه نوازنده ویالون راه سفر را در پیش گرفت. راهی که انتخاب کرده بود از یه جنگل می او با خودش گفت من خیلی تنهام چقدر خوب بود اگر همدمی داشتم. بعد ویالونش رو روی شونش گذاشت و شروع کرد به نواختن آهنگی شاد که نوای اون توی جنگل پیچید. طولی نکشید که یک گرگ از میان انبوه درختا آهسته به سمتش اومد. ویالون نواز با صدای بلند گفت ای خدا یک گرگ ولی هیچ دلم نمیخواد که یک گرگ منو همراهی کنه. ولی گرگ نزدیک و نزدیکتر اومد و گفت ای ویالون نواز عزیز چقدر زیبا می نوازی؟ کاش منم میتونستم ویولون بنوازم نوازنده ویولون جواب داد؟ اگه هر کاری که من میگم انجام بدی میتونم خیلی زود ویولون زدن و یاد بدم هر کاری که دستور بدی انجام میدم مثل یه شاگرد در خدمت استاد ویولون نواز گفت پس همراه هم بیا بعد با هم به راه افتادم بعد از اینکه راه درازی طی کردن به یه درخت بلوت رسیدن. تنه درخت شکافی داشت که یه دست میتونست ازش بگذره. نوازنده ویولون شکاف تنه درخت رو به گرگ نشون داد و گفت اگه میخوای ویولون زدن و یاد بگیری دو پای جلویت رو توی این شکاف بذار. گرگ اطاعت کرد. وقتی پاهاش رو در شکاف تنه درخت گذاشت ویالو نواز چنان سنگ بزرگی روش قرار داد که حیوان بیچاره دیگه نتونست حرکت کن و در حقیقت زندانی شد. نوازنده بهش گفت همینجا بمون تا برگردم. بعد راهش رو کشید و رفت. بعد از طی مسافتی باز زیر لب زمزمه کرد. باز هم در این جنگل تنها موندم. چطور یه بار دیگه برای پیدا کردن یه همراه تلاش کنم؟ دوباره ویالون رو روی شونش گذاشت و با چنان شوری شروع به نواختن کرد که صدای اون در چهار گوشه جنگل پیچید. ناگهان روباهی جلوش سبس شد و ویالو نواز گفت روباهی به سراخم اومده اما هیچ خوشم نمیاد با حیوان مثل روباه همراه باشم. روباه گفت چه موسیقی زیبایی منم دلم میخواد مثل تو نواختن ویالونو یاد بگیرم. نوازنده گفت اگه به حرف من گوش کنی یاد گرفتن ویالون چندان دشوار نیست روباه گفت حاضرم مثل یک شاگرد مطیع استاد باشم ویالون نواز گفت پس دنبال من راه بیفت اون دوتا راه افتادن و رفتن و رفتن تا به یک باری که راهی رسیدن که دو طرف اون گیاهای بلندی روییده بود ویالون نواز ایستاد شاخه یکی از درخت رو خم کرد و نوکش رو زیر پاش گذاشت. بعد شاخه درختی رو از اون طرف باریک راه گرفت و خم کرد و زیر پای دیگرش گذاشت. بعد رو کرد به روباه و گفت روباه کوچولو اگه دلت میخواد ویالون زدن یاد بگیری پای چپت رو بده به من. روباه اطاعت کرد نبازنده پاش رو به شاخه سمت چپ بست. حالا پای راستت رو بده. روباه که یادش بود قول داده از دستورات نوازنده سرپیچی نکنه پای دیگرش رو هم بهش داد. ویالو نواز اونو به شاخه دیگه گره زد. ویالو نواز وقتی مطمئن شد که گره ها پاش رو برداشت و شاخه ها رو رها کرد. شاخه ها به وضعیت قبلی خودش برگشت و روباه رو در وسط باریکه راه بین زمین و هوا معلق نگه داشت. ویالون نواز گفت همینجا باش تا برگردم. بعد هم راهش رو کشید و رفت. چندان طولی نکشید که دوباره احساس دلتنگی بهش دست داد باز هم ویالونش رو روی شونش گذاشت و شروع کرد به نواختن و زیر لب زمزمه کرد چقدر خوب بود اگر همدمی داشتم. چند دقیقه بعد یک سگ شکاری نزدش اومد. ویالون نواز گفت اینجا رو ببین، یه سگ شکاری، ولی من دلم نمیخواد همراهی مثل اون داشته باشم. سگ شکاری که سخت تحت تاثیر موسیقی قرار گرفته بود، آهسته نزد ویالو نواز اومد و گفت ویالو نواز عزیز، چقدر زیبا می نوازی. خیلی دوست دارم مثل تو بتونم ویالون بزنم. ویالو نواز گفت اگه دستوراتم رو اطاعت کنی یاد گرفتن ویالون اونقدرم سخت نیست سگ گفت اگر ویالون زدن رو به هم یاد بدی مثل یه شاگرد مطیع عوامرت میشم اون دو مسافتی رو با هم طی کردن تا به یه جایی از جنگل رسیدن که چندان پر درخت نبود یه درخت سپیدار در اونجا رویده بود ویالون نواز از جیبش نخ بلندی در آورد و اونو دور گردن سگ زد انتهای دیگه نخ رو هم دور تنه سپیدار بست و گفت سگ کوچولوی چالاک حالا بیست بار دور این درخت بودو. سگ اطاعت کرد ولی وقتی برای بیست دومین بار دور درخت چرخید نخ طوری دور تنه محکم شد که اگر میخواست تکون بخوره گردنش رو زخمی میکرد. به این ترتیب بیال و نواز سومین زندانی خودش رو هم پشت سر گذاشت و رفت. اون به سگم گفت همینجا بمون تا برگردم. در این هین گرگ خیلی تلاش کرد تا پاهای خودش رو خلاص کنه و با هر مشقتی که بود بالاخره تونست خودش رو از زیر سنگ و از شکاف تنه درخت نجات بده. گرگ که خیلی عصبانی شده بود و میخواست انتقام بگیره تصمیم گرفت با عجله ویالو نواز رو پیدا کنه و اون رو تیک پاره کنه. سر راهش به روباه برخورد که بین زمین و هوا معلق بود. روباه ناله کنان گفت برادر زرنگ گرگ عزیز لطفا کمکم کن. ویالو نواز من رو هم به این روز انداخت. وقتی گرگ التماس های اون رو شنید شاخه های درخت رو پایین آورد با دندونهاش گره رو باز کرد و روباه رو نجات داد. بعد با هم راه افتادن تا انتقامشون رو از ویالون زن بگیرن سر راه سگ شکاری رو دیدن که در بند بود اونو هم آزاد کردن و ستایی را افتادن تا انتقام بگیرن وقتی این حوادث روی میداد نوازنده ی ویالون کس دیگری رو هم با نوای موسیقیش به دام انداخته بود صدای ویالون به گوش یک هیزم شکن بی نوا رسیده بود و او هم بناچار دست از کار کشیده بود، تبرش رو زیر بغل زده بود و به سراغ نوازنده ویالون رفته بود. تازه اون وقت بود که ویالون نواز با صدای بلند گفت بالاخره همراه واقعیم رو پیدا کردم. من به دنبال آدم ها گشتم. نه حیوانات وحشی ویالون نواز شورنگی سری نواها رو نواخت تا همراه خودش رو خوش کنه. هیزم شکن هم مسحور صدای موسیقی بود که گرگ، روباه و سگ با چشمانی پر از شرارت و انتقام جویی سر رسیدند دوست تازه نوازنده مقابل اونها ایستاد، تبر بر خودش رو بلند کرد و فریاد زد. اگر بخواین کوچکترین صدمه ای به این ویال و نواز بزنین با من سر و کار دارین و این کار به قیمت جونتون تموم میشه. با این تهدید جانوران خشمگین به سوی جنگل گریختن. هیزم شکن هم ویالون زن رو به کلبه خودش برد و از اون پس اون دو دوست برای همیشه کنار هم زندگی کردند.